تیری که عجل کشد سپرها هیچ است، بین محتشمی و سیم و زرها هیچ است، چندان که به روی کارها در نگرم نیک است که نیک است، دگرها هیچ است. هر دل که در رومای تجرید کم است، بیچاره همه عمر ندیم ندم است، جز خاطر پارغ که نشاطی دارد، باقی همه هرشه هست، از باب غم است. هر کو تربیز عقل در دل میکاشت کاشت یک روز عمر خیش زایع نگذاشت یا در طلب رضای یزدان کوشید یا راحت خود گزید و ساغر برداشت. یزدان چگله بجود ما را آراست دانست ز فعل ما چه خواهد برخواست بی حکمش نیست هر گناهی که مراست پس سوختن قیامت از بهره چه خواست.